بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با بارشن وای بر کم فروشان آنانی که چون از مردم پیمانه را می گیرند، آن را کامل می ستانند. ولی وقتی که برای ایشان پیمانه ای را می دهند یا برایشان برای وزن می کنند، کم می کنند آیا ایشان باورم ندارند که برانگیخته می شوند در روزی بزرگ؟ روزی که همه مردم به حضور پروردگار عالمیان بپا می خیزند؟ نه چنان است که این نامسلمانان می پندارند یقینا دفتر اعمال بدکاران در سی جین قرار دارد و چی می دانی که سیجین چیست؟ کتابی نوشته شده یوم وای در آن روز بر تکذیب کنندگان آنانی که روز را دروغ می و هیچ کس روز را تکذیب نمی کند جز آن تجاوزگر گنهکار که چون آیات ما به او خانده می شود می گوید اینها افسانه های پیشنیان است نه چنان است که این نامسلمانان می پندارند بلکه اعمالی که کسب کرده اند در دلهایشان زنگ پدید آورده است چنین نیست که این نامسلمانان میپندارند بگمان ایشان از دیدار پروردگار خیش در آن روز در حجابند و باز با دوزخ داخل میشوند. سپس گفته می شود این است چیزی که آن را تکزید میکردید چنین نیست که این نامسلمانان میپندارند بگمان کتاب اعمال نیکوکاران در این است و چی میدانی که این چیست؟ کتابی نوشته شده که آن را مقربان مشاهده یعنی مراقبت می کنند بیگمان راستکاران در ناز و نعمت بر تختهای عزت قرار دارند به هر سو تماشا می کنند در چهره هایشان تراوت و نشاط برخورداری از نعمتها را تشخیص می از شراب خالص سر به مهر نوشانیده می شوند مهر آن مشک است و در حاصل کردن این مقام باید که پیشگیرندگان پیشی بگیرند این شراب ممزوج با تصنیم است چشمایی که از آن مقربانی درگاه الهی می نوشند روزی بود که بیگمان گناهکاران بر مؤمنان می خندیدند و چون بر آنها می گذشتند چشمک می زدند و هنگامی که به سوی خانواده خود برمیگشتند خوشطبعی و شوخی میکردند و چون آنها مسلمانان را می دیدن می اینها واقعا گمراهانند، در حالی که آنها برای مراقبت احوال مسلمانان فرستاده نشده بودند. اما امروز مؤمنان بر کافران می بر تختهای قرار دارند و به هر سو تماشا می کند. آیا کافران به جزای اعمالی که انجام می رسیدند؟